رسیدن افسون در یک روز آفتابی بهاری در کودکستان قصر ارل جادوگر زیروندرل کنار آتش نشسته بود و برای کودک غذا میپخت. پسرک اکنون سه ساله شده بود و لیرازل هنوز نامی بر او نگذاشته بود. چون میترسید مبادا روح حسود از زمین یا هوا نامش را بشنود و نمی نمیگفت در این صورت از چه میترسد؟ و آلوریک گفته بود که باید نامی بر او گذاشته شود و پسرک می با حلقه بازی کند چون جادوگر در یک شب مهالود به تپه رفته بود و برای او یک حاله ماه که با جادو در هنگام بالا آمدن ماه گرفته بود آورده بود و آن را حلقه کرده بود و با آهن آزرخشی میله کوچکی درست کرده بود که بتواند با آن به حلقه ضربه بزند. و اکنون کودک در انتظار صبحانه اش بود و زیراندریل با حرکت دادن عصای آب نوسیش تلسمی بر آستانه اتاق گذاشته بود تا آن را ایمن نگه دارد. این تلسم موش های و خانگی و سگ را دور نگه می داشت و خفاش ها نیز نمی توانستند از آن بگذرند. و گربه هشیار را در خانه نگه می‌داشت. هیچ آهنگری نمی توانست قفلی از این محکم تر بسازد ناگهان جن از بالای آستانه و بالای تلسم پشتک زنان به اتاق پرید و در حالت نشست برزمین فرود آمد با آمدن او ساعت زمخت چوبی کودکستان از کار افتاد چون جن با علف عجیبی که به دور یکی از انگشتانش بسته بود با خود جادوی کوچکی بر علیه زمان حمل می کرد تا در دشتهایی که می شناسیم پیر و نشود چون شاه پریان پرواز ساعتهای ما را می دانست. در طول زمانی که از پله های برنجیش پایین آمده و به سراغ جنش فرستاده بود آنتلسم را به او داده بود تا به دور یکی از انگشتهایش ببندد چهار سال بر دشتهای ما گذشته بود. زیراندرل گفت این چیست؟ جن خوب میدانست چه زمانی باید گستاخ شود اما با نگاه کردن در چشمهای جادوگر چیزی دید که باید از آن می ترسید؟ چون آن چشمها در چشمهای خود شاه پریان نگریسته بودند بنابراین به گفته ما در این دشتها بهترین ورقش را بازی کرد و پاسخ داد پیغامی از سوی شاه پریان جادوگر پیر گفت این گونه است و آرام و زیر لب افسود بله بله باید برای بانویم باشد بله این پیام سرانجام باید می رسید جن که با تومار پوست آهوی افسون شاه پریان بازی می کرد خاموش روی زمین نشست سپس کودک که در انتظار صبحانه بر روی تختش نشسته بود جن را دید و از او پرسید کیست و از کجا آمده است و چه می تواند بکند هنگامی که کودک پرسید چه می تواند بکند جن بالا پرید و مانند پروانه ای گرد نور شروع به جهیدن در اطراف اتاق کرد با جهش هایی همچون پرواز از کف اتاق به روی قفسه ها و دوباره به پایین می پرید کودک دستهایش را برهم می کوبید، گربه خشمگین شده بود، جادوگر اسای آبنوسیش را بلند کرد و بر علیه جهیدن جادویی کرد که نتوانست جن را متوقف کند، می جهید و پشتک وارو میزد و در همین هنگام گربه، هیس, هیس کنان، تمام تلسمهایی را که زبان گربه می داند، فرو خواند و جادوگر عصبانی بود، نه فقط برای اینکه که جادویش بی اثر شده بود، بلکه چون به خاطر یک نگرانی انسانی صرف نگران فنجان و نلبکیهایش بود و کودک در تمام مدت فریاد میزد و از جن میخواست ادامه بدهد ناگهان جن به یاد مأموریتش و پوست آهوی وحشتناکی افتاد که به همراه داشت به جادوگر گفت شاهدخت لیرازل کجاست و جادوگر به برج شاهدخت اشاره کرد چون میدانست هیچ وسیله و هیچ نیروی برای نگاه داشتن افسونی از سوی شاه پریان ندارد و هنگامی که جن برگشت تا برود لیرازل وارد اتاق شد. جن در برابر بزرگترین بانوی سرزمین پریان تعظیم کرد و در یک لحظه تمام گستاخیش ناگهان از بین رفت. در برابر درخشش زیبایی او زانو زد و افسون شاه پریان را به او داد. هنگامی که شاه دخت تومار را در دستش گرفت پسرک به سوی مادرش فریاد میزد که از جن بخواهد باز هم بپرد گربه که پشتش را به دیوار چسبانده بود هوشیارانه نگاه می کرد کاملا خاموش بود و سپس جن به دریاچه های سبز چمنی و ژرف درون جنگل های سرزمین پریان که جنها می شناختند اندیشید به شگفتی های گل های ناپژمردنی که زمان هرگز لمسشان نمی کرد اندیشید به آن رنگ های تیره تیره و آرامش ابدی اندیشید معمولیتش به پایان رسیده و اکنون از زمین خسته شده بود برای یک دم هیچ چیز تکان نخورد جز کودک که با فریاد جنبازی های بیشتری می خواست و دستهایش را تکان میداد لیرازل با تومار پریانه در دست ایستاده بود. جن در برابرش زانو زده بود. جادوگر از آغاز تکان نخورده بود. گربه هوشیارانه ایستاده بود. حتی ساعت از حرکت باز ایستاده بود. سپس شاهدخت تکان خورد و جن خواست جادوگر آه کشید و با رفتن جن گربه آن حالت نگران را از دست داد. و هر چند کودک فریاد میزد که جن بازگردد، جن هرگز سربر نگرداند. بلکه از پلکان مارپیچی بلند، پایین رفت و از دروازه بیرون رفت و به سوی سرزمین پریان براه افتاد. جن که از آستانه گذشت، ساعت چوبی دوباره تیک و تاکش را آغاز کرد. لیرازل به تومار و سپس به پسرش نگریست و پوست لوله شده را باز نکرد. برگشت آن را با خود به اتاقش برد و در صندوق گذاشت و درش را قفل کرد و ناخوانده بر جای گذاشتش. چون ترسهایش خوب به او می گفتند که نیرومندترین افسون پدرش همان افسون که به هنگام گریز از برج نقرهای با شنیدن تنین گامهای پدرش در پلکان برنجی از آن ترسیده بود بر روی آن تومار نوشته شده. و از جبهه شفق گذشته بود و اگر آن را میگشود چشمهایش در همان دم افسون را میدید و افسون چون بادی او را با خود میبرد هنگامی که افسون را در صندوقچه گذاشت و درش را قفل کرد به نزد آلوریک رفت تا درباره این خطر قریب الوقوع صحبت کند اما آلوریک از اینکه او نمیخواست نامی بر کودک بگذارد آزرده بود و از او درباره این موضوع پرسید و بنابراین سرانجام شاهدخت نامی به او پیشنهاد کرد و این نامی بود که هیچ کس در این دشتها نمی بر زبان آورد نامی پریانه، سرشار از شگفتی و ساخته شده از هجاهایی چون ناله شبانگاهی پرندگان آلوریک حاضر نشد آن را بپذیرد، و لیرازل به انجام این کار همچون تمامی حواسهای دیگرش از هیچ امر مرسومی در دشتهای ما سرچشمه نمی‌گرفت بلکه همراه با رؤیاهای وحشی که به ندرت به دیدار دشتهای ما می آیند راست از آن سوی مرز سرزمین پریان می‌آمد و آلوریک از این ها خسته شده بود چون از زمان‌های دور هیچ حوسی شبیه آنها در قلعه ارل وجود نداشت هیچ کس نمی‌توانست آنها را تفسیر کند یا او را راهنمایی کند می‌خواست همسرش در راستای سنت‌های کهن حرکت کند ایرازل تنها در راستای رؤیاهای وحشی حرکت می‌کرد که از جنوب شرقی می‌آمدند با منطق انسانی برایش استدلال کرد که مردم اهمیت زیادی به این قلعه می دهند اما او منطق نمی خواست و بنابراین هنگامی که از هم جدا شدند لیرازل هنوز چیزی در خطری نگفته بود که از جانب سرزمین پریان به جستجویش آمده بود و این همان چیزی بود که برای گفتنش به نزد آلوریک آمده بود به جای آن به برجش رفت و به صندوقچه درخشان در نور دیرگستر نگریست و تا زمانی که روشنایی به زیر دشتها رفت و غروب رسید و سپس هوا تاریک شد، بارها رویش را از آن برگرداند و باز به آن نگریست. سپس در کنار پنجره روبه تپه های شرقی نشست و بر فراز آن انهناهای تیر شونده به ستارگان نگریست. چندان به آنان نگریست که جابجا جا شدنشان را هم دید چون از دیدن ستاره ها بیش از هر چیز دیگری در این دشت شگفت زده شده بود زیبایی نجیبانه را دوست داشت و اما هنگامی که خاموش به آنان مینگریست اندوه‌کین بود چون آلوریک گفته بود نباید آنان را نیایش کند اگر آنان را نیایش نمی کرد، چگونه می توانست را که سزاوارش بودند به آنها بدهد؟ چگونه می توانست زیباییشان را ستایش کند؟ چگونه می توانست آرامش دلپذیرشان را عرج بگذارد؟ و به کودکش اندیشید؟ سپس اوریون را دید؟ پاورقی اوریون یا منظومه جبار در اساطیر یونان نام شکارچی ماهری بود که آشق آرتمیس مادینه خدای شکار شد. مترجم ادامه متن. سپس تمامی ارواح آسمانی را نیایش کرد و در حالی که اوریان را مینگریست که هرگز نمی بایست نیایش میکرد، روزهای کودکش را به آن شکارچی کمربسته تقدیم کرد. و نام کودکش را به افتخار آن ستارگان هوشمند گذاشت و هنگامی که آلوریک به برج آمد لیرازل آرزویش را به او گفت و آلوریک به این که پسر اوریون نامیده شود راضی بود چون در آن دره همه به شکار عرج می نهادند و باز آن امید نارفته به سویش باز گشت که اگر لیرازل سرانجام در این مورد منطقی شده است در موارد دیگر هم منطقی خواهد بود و در راستای سنت ها گام بر خواهد داشت و آنچه را انجام می دهد که دیگران می کنند و حبس ها و رؤیاهای وحشی را که از آن سوی مرز سرزمین پریان می آمد ترک خواهد گفت و از او خواست اشیای مقدس نجات دهنده را نیایش کند چون لیرازل، هرگز این چیزها را نیایش نکرده بود نمیدانست دانست کدام مقدسترند شمدان یا زنگ و هرگز آنچرا که آلودیک به او می گفت نمی آموخت و اکنون پاسخ مطلوبی داد و شوهرش گمان کرد که همه چیز مرتب است اما اندیشه های او در دور دستها در کنار اوریون بود اندیشه هایش هرگز بر سر چیزهای خطرناک درنگ نمی کردند و هرگز نمی توانستند بیشتر از ماندن پروانه در سایه در میان این مسائل باقی بمانند. تمام آن شب در صندوق چه به روی افسون شاه پریان قفل شده بود و روز بعد لیرازل چندان به آن افسون نیندیشید چون با پسرک به جایگاه مقدس نجات دهنده رفتند. وزیراندریل با آنها آمد اما بیرون در منتظر ماند و تعدادی از مردم ایرل هم که می توانستند کارهای دشتهای ما را رها کنند آمدند و همه آنانی بودند که به هنگام رفتن به نزد پدر آلوریک در آن اتاق دراز سرخ شورا را تشکیل داده بودند و همه اینان از دیدن پسرک شاد شدند و به نیرو و رشدش اشاره کردند و در حالی که در آن جایگاه مقدس ایستاده بودند، زیر لب پیشگویی میکردند که چگونه همه چیز همان گونه خواهد شد که میخواستند و نجات دهنده جلو آمد و در حالی که در میان اشیای مقدسش ایستاده بود، نام پسرک روبرویش را اوریون گذاشت. هرچند پیش از آن نام کسانی را بر مردم گذاشته بود که میدانست رستگار شدهاند و از دیدن پسرک و نامگذاردن بر او در آنجا خوشحال شد چون مردم نسلها را با خاندانی که در قلعهٔ ارل میزیستند مشخص می کردند و به گذر دورانها مینگریستند همان گونه که ما گاهی به گذر فصلها بر درخت پیر مشهوری مینگریم و خودش در برابر آلوریک تعظیم کرد و نسبت به لیرازل بسیار فروتن بود هرچند فروتنیش از قلبش بر نمیخواست، چون لیرازل در قلبش گرامی تر از پری دریایی نبود که دریا را ترک کرده بود و به دین ترتیب پسرک اوریون نامیده شد و هنگامی که همراه با پدر و مادرش بیرون آمد و هر سه در هاشیه باغ مقدس به زیراندریل پیوستند تمام مردم حل کردند و آلوریک، لیرازل، زیروندرل و اوریون گامزنان به قلعه ایرل بازگشتند و تمام روز لیرازل هیچ کاری نکرد که دیگران را به شگفتی وادارد و خود را در اختیار سنت و شیوه های دشت هایی که میشناسیم گذاشت تنها هنگامی که ستاره بیرون آمدند و اوریون تابید دانست که شکوه آنان عرج لازم را دریافت نکرده و ستایش اوریون در اشتیاق برزبان آمدن است. از زیبایی درخشان اوریون که دشتهای ما را شاداب می کرد و از نگاهبانی او از فرزندش در برابر ارواح حسود آسمانی که از آن مطمئن بود سپاسگذاری کرد. و همه ی سپاس های ناگفتهش چنان در قلبش میسوختند که ناگهان برخاست و برجش را ترک کرد و در فضای باز بیرون به زیر نور ستارگان رفت و رو به سوی ستارگان و جایگاه اوریون کرد و خاموش ایستاد. هرچند چند سپاسهایش بر لبانش می چون آلوریک به او گفته بود نباید ستارگان را نیایش کرد. بنابه فرمان آلوریک خاموش، با چهرههای رو به تمامی آن دسته های سرگردان ایستاد. سپس چشمهایش را پایین آورد و در آنجا استخر کوچکی بود که در شب سوسو می میزد و تصویر ستارگان در آن می درخشیدند. با خود گفت: «نیایش ستارگان مطمئن نادرست است اما این تصاویر درون آب ستاره نیستند. من تصاویرشان را نیایش می کنم و ستارگان خواهند فهمید. و در میان برگهای سوسن زانو زد و بر لبه استخر نیایش کرد و به خاطر لذتی که ستارگان به او بخشیده بودند لذت دیدن درخشش صور فلکی در عظمت بیپایانشان و حرکت سپاهگونه آنان در لباس نظامی نقره‌ای از پیروزی ناشناخته به سوی پیروزی دیگری در نبردهای دوردست از تصاویرشان سپاسگزاری کرد آن بازتاب های درخشان و لرزان در استخ را تقدیس کرد و سپاس گذاشت و گرامی داشت و از آنان خواست سپاس و احترامش را به اوریون برسانند که نیایشش نمی کرد در همین هنگام آلوریک او را یافت که در تاریکی زانو زده بود با تلخی سرزن شش کرد گفت ستارگانی را نیایش می کند که بی هدف در آسمان هستند ولی رازل گفت که تنها تصاویرشان را دعا و ستایش میکند ما به سادگی می‌توانیم احساس آلوریک را درک کنیم غریبی لیرازل کارهای نامنتظرهش ناسازگاریش با تمام چیزهای تسبیت شده تمسخورش نسبت به سنت نادانی لجوجانش که هر روز بر سر سنتی نگهداری شده چون گنج فرو می‌ریخت. هر هرچه افسانهها ها و ترانه ها او را دران سوی مرز سوی مرز تر میدانستند بر کردن جایگاه بانوان پیشین آن قلعه که با فرهنگ دشت هایی که میشناسیم هماهنگ بودند برایش دشوارتر بود البریک می خواست و آلوریک میخواست لیرازل وظایفش را انجام دهد و از سنت هایی پیروی کند که به اندازه ستارگان درخشان برایش تازگی داشت اما لیرازل فقط احساس میکرد ستارگان آنچنان که سزاوارند گرامی داشته نشدهاند و آن سنت یا منطقی یا هر انسانها به آن احترام میگذاشتند، باید میخواست که زیبایی آنها ستوده شود و او حتی خود آنها را نستوده بود و تنها تصویرشان را در آب استخر دعا کرده بود. آن شب به سرزمین پریان اندیشید، جایی که همه چیز با زیباییش هماهنگ بود، جایی که هیچ چیز دگرهو نمی شد و سنتهایش غریب نبود و هیچ عظمتی همچون این ستارگان ما وجود نداشت که هیچ کس گرامیشان ندارد به سبززارهای سرزمین پریان و نوک بلند گلها و کاخی که نمی توان از آن گفت مگر در افسانهها اندیشید و افسونه زندانی شده در تاریکی صندوقچه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 رفتن به دنیای پریان ماجراجویی در, ما در سرزمین زیر دریا همه اینها و بیش از اینها در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های